سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بزودي بيخردان از مردم ميوياند چه چیز آنها را از قبلشان که بر آن بودند بازگردانی بگو مشرق و مغرب از آن خداست و هر کس را بخواهد براه راست هدایت میکند و کذالک ام متون وسطل تکون شهدا عل الناس وَيَكُونَ الرسول عليكم شهيد وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من, من ينقلب على عقبه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَتًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَّحِيمٌ و همچنین شما را میان قرار دادیم تا بر مردم گباه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد و ما آن قبل ای را که بر آن بودی قرار دادیم، مگر برای اینکه که بدانین کسی را که از پیامبر پیروی می نماید از کسی که بر پاشنهای خود به عقب باز می گردد و اگرچه این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار است و خداوند هرگز ایمان شما را زایع نمیگرداند همانا خداوند نسبت به مردم رعوف مهربان است قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذین أوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون به تحقیق ما گردندن روی تورا به سوی آسمان میبینیم تو را به سوی قبل ای که به آن خوشنود شبی باز می گردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به سوی آن بگردانید و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد به خوبی می‌دانند این تغییر قبل حق است و از جانب پروردگارشان گارشان می باشد و خدا از آنچه چی قافل نیست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 بعدما جاءك من العلم انك اذا لمن واگر برای آنان که کتاب به داده شده هر گونه نشانه و حجتی بیاوری از قبله تو پیروی نمی کنند و تو نیز از قبله آنان پیروی خواهی کرد و برخی از آنان هم از قبله برخی دیگر پیروی نمی کنند و اگر بعد از آنکه علم و دانش به تو رسیده است از خاسته و آرزوهای آنان پیروی کنی در این صورت مسلمان از ستمکاران خواهی بود الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ و این فریقا منهم ليکتمون الحق وهم کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم او را میشناسند شناسند فرزندان خود را میشناسند. و همانا گروهی از آنان در حالی که میدانند، حق را کتمان می الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق از جانب پروردگار تو است پس هرگز از شک کنندگان مباش ولي كل هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شَيْءٍ و برای هر یک جهتی است که هنگام نماز بدان رو می کند پس در نیکی ها بر یک دیگر سبقت بگیرید هر جا که باشید خداوند همه شما را حاضر می کند همانا خداوند بر هر چیزی تواناست و من حیث خرج تف ول شطر المسجد الحرام و اینه لالحق مال ربك و الله بغافل عما تعمل و از هرچه کبیرون شدی پس به هنگام نماز روی خدراب سوی مسجد الحرام کن و به درستی که این رو کردنت حق دی از جانب پروردگارت است و خداوند از آنچه میکنید غافل نیست و من حيث خرج فتولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا فَلَا ظلموا منهم فلا تخشوهم, وخشوني فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون و از هر جا که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و ای مؤمنان هر جا که بودید روی خود را به سوی آن کنید تا مردم جز کسانی از ایشان که ستم کردند بر شما حجتی نداشته باشند پس از آنها نترسید و از من بترسید و تا نعمت خود را بر شما تمام کنم و باشد که هدایت شوید كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون چنانكي از خودتان در میانه شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاک می گرداند و به شما کتاب و حکمت می آموزد و آنچه نمی دانستید به شما یاد می دهد فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم وَشْكُرُونِي ولا تَكْفُرُونِ پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و سپاس من گوهید و ناسپاسی من نکنید. یا ای آنها الذين امنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ان الله مع الصابرین ای کسانی که ایمان آورده از شکیبایی و نماز یاری بجویید که همان خداوند با شکیباییان است ولا تقولوا لمن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله اَمْوَاتِ بل اَحْيَاءُونَ ولكن لَا تَشْعُرُونَ و به آنها که در راه خدا کشته میشوند مرد مرده نگویید بلکه آنان زنده اند بلی شما نمیفهمید ولا نبر أن نك بشئم من الخوف والجوع ونقص من الأموا والآفسی والثمرات السمرات و قطعا شما را با چیزی از ترس و گرسگی و کاهش مالها و جانها و میبه ها آزمایش میکنیم. فمُجِيبُ دَهِ أصابتهم كُنَندگان الذين قالوا قالوا ان لله وإنا ان راجعون آنها چهرگاه مصیبتی به ایشان برسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم اولئک علیهم صلواتٌ من ربهم ورحمه وأولئک هم المهتدون اینها هستند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و اینانند هدایت یافتگان ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم حمانا و والمروه از شعائر خداست پس هر کی حج خوانی خدا کند و یا عمر انجام دهد بر او گناهی نیست که میان آن دو تواف کند و کسی که به رغبت خود کار را انجام دهد پس به درستی که خداوند سپازگزار داناست ان الذين <سؤال> يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون همانا كسانيك ان چراك از دلائل روشن و هدایت نازل کرده این بعد از آنکه آن را در کتاب تورات برای مردم بیان نمودیم کتمان می کنند، خدا آنها را لعنت می‌کند و لعنت کنندگان آنها را لعنت میکنند الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئک اتوب عليهم وانا التواب الرحيم مگر کسانی که توبه کردند و اعمال خود را اصلاح نبودند و آنچه را کتمان کرده بودند آشکار ساختند پس نانند که ایشان را میپذیرم و من پذیر مهربانم این الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين همانا کسانی که کافر شدند و در حالی که کافر بودند مردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود لا يخفف عنهم ولا هم در آن لعنت جاودانه باقی میمانند و نه عذاب آنان تخفیف داده می شود و نه ایشان مهلت داده میشوند. و إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم و خدای شما خداوند یگانه است که غیر از او معبودی نیست بخشنده مهربان است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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون همانا در آفرينش آسمانها وزمين وآمدو شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود میرساند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از مردنش زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن پراکنده کرده و در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین به آسمانها مسخرند بیگمان نشانه است برای مردمی که تعقل میکنند و می اندیشن.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 و لو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب و از مردم کسانی هستند غیر از خداوند همتایانی را انتخاب میکنند و آنها را مانند دوست داشتن خدا دوست میدارند و کسانی که ایمان آورده اند خدا را بیشتر دوست میدارند کسانی که ستم کردند اگر می‌دیدند هنگامی که عذاب را مشاهده می کنند که تمام قدرت از آن خداست به اینکه خداوند سخت کیفر است اذ تبر الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا ورأوا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الأسباب هنگامی که رهبران گمراه کننده از پیروان خود بیزاری می‌جویند و عذاب را مشاهده می‌کنند و روابط به پیوندشان گسیخته شود. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم من النام. و در این هنگام پیروان میگویند کاش برای ما بازگشتی به دنیا بود تا از آنها بیزاری جوییم همان گونی که آنان از ما بیزاری جستند این چونین خداوند کردار را به صورت حسرت زایی به آنان نشان میدهد. و هرگز از آتش دوزخ بیرون نخواهند آمد یا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اي مردم از آن چه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید چرا که او دشمن آشکار شماست اینما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و این که به خداوند نسبت دهید آنچرا که نمیدانید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا عليه آباءنا اولا اون كان ابام لاقلون شيء ولایدون و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید میگویند نه، بلکه ما از آنچه پدران خود را بران یافتیم پیروی میکنیم. آیا اگر پدران آنها چیزی نمیفهمیدند و هدایت نیافتند؟ باز هم کرکوران از آنها پیروی می کنند. و مثل الذین كفروا كمثل مثل الذین بما لا يسمع إلا دعاء و نداء سم عمی فهم لا يعقلون مثل کسانی که کافر شدند همچون مثل کسی است که چیزی را که جز صدا و ندایی نمی بانگ این کافران کر، گنگ و نابینا هستند و از این رونه می انبیشند. یا ایوها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا لله و لله این کنتم ایاه تعبدون ای کسانی که ایمان آورده از چیزهای پاکیزه ای که روزی شما کرده این بخورید و شکر خدا را به جا آورید ایرتنها اورامی پرستید. اینما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير وما أهله لغير الله فمنضطر غير باعث ولا عاد فلا اسم عليه. إن الله غفور الرحيم خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام زب نام غیر خدا بر برده شده بر شما حرام کرده است و اگر کسی ناچار شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد پس گناهی بر او نیست همانا خداوند آموزنده مهربان است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 اولئك ما که فی بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم ولا ولهم عذاب آنچه را خدا از کتاب آسمانی نازل کرده و آن را به بهای اندکی می فروشند آنها جز آتش چیزی نمی و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی کند برای آنها عذاب درد است اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النع اینان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت و عذاب را به بهای آمرزش خریدند پس بر آتش چه شکیبا هستند ذالک بأن الله نزل الكتاب بالحق و این الذین اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید این به خاطر آن است که خداوند کتاب آسمانی را به حق نازل کرده است و کسانی که در آن اختلاف کردهاند در ستیزی دور هستند. لیس البر ان تولوا قبل المشرق <تصفيق> والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه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 اولئیک و هم المتقون نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید بلکه نیکی و کار کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و باماندگان در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد و وفا به پیمانشان چون پیمان بندند به کسانی که در فقر و سختی و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکی اینها این کسانی هستند که راست گفتند و آنها پرهیزگارانن یا <تصفح> ایوها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ ای کسانی که ایمان آورده اید در مورد کشتگان حکم قصاص بر شما نوشته شده است آزاد به آزاد و برده به برده و زن به زن پس اگر کسی از سوی برادر دینیش چیزی به او بخشیده شد باید از راه پسندیده پیروی کند و قاتل نیز به نیکی دیه او را بپردازد این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن تجاوز کند او را عذاب درد است و فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلكم تتقون و ای صاحبان خرد برای شما در قصاص حیات و زندگی است باشد که شما تقبا پیشه کنید کتب علیکم اذا حضر أحدكم الموت این ترك خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرارسد اگر مالی از خود به جای گذارده برای پدر و مادر تخیشوابندان بینیکی وصیت کند این حقی بر پرهیزگاران فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم پس هر کس که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهد به درستی که گناهش بر است که آن وسیعت را تغییر میدهند همانا خداوند شنوای داناست فمن خاف من موصی جنفا او اثما فأصلح بینهم فلا اثم علیه إن الله غفور رحیم پس کسی که از بی ادالتی کننده یا از گناه او بترسد، انگاه میان آنها را اصلاح نمود، پس گناهی بر او نیست، به درستی که خداوند آمرزنده مهربان است، یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود تا پرهیزگار شوید ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و ان تصومو خیر لكم این كنتم تعلمون روزه در روزهایی معدود و اندکی است. پس هر کس از شما که بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر روزه بگیرد و بر کسانی که توانایی آن را ندارند لازم است کفاره بدهند و آن خوراک دادند به مسکی نیست و هر کس که به رقمت خود بیشتر نیکی انجام دهد پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید روزی گرفتن برای شما بهتر است شهر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هدا للناس و لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصْمُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ ولتکبر الله ما آن چند روز محدود و اندک ماه رمضان است ماهی که قرآن در آن نازل شده است کتابی که راهنمای مردم است و در بردارنده دارنده نشانها و دلایل آشکار و روشن از هدایت و جدا کننده حق از باطل است پس هر کس از شما این ماه را در یابد باید که آن را روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر بود پس باید به تعداد روزهایی که افطار کرده روزهای دیگر را روزه بگیرد خداوند برای شما آسانی میخواهد و برای شما دشواری نمیخواهد. و تا شما روزهای رمضان را کامل کنید و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده بزرگ بدارید و باشد که شکر گذاری کنید و اذا سألك عبادی عنی فاني قريب قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبولی و یؤمنو بی لعلهم و چون بندگانم از تو درباری من بپرسند بگو به راستی که من نزدیکم دعای دعا کننده راهنگامی که مرا به خانت اجابت میکنم پس آنان باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند باشد که راه یابند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 فالآن باشرهم وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهم وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب و روز بر شما حلال گردیده است آنان لباس شما هستند و شما لباس آنها خداوند میدانست که شما به خودتان خیانت می کردید پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید پس اکنون در شبهای رمضان می توانید با آنان آمیزش کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا تارشته سپید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار شود سپس روزه را تا شب به پایان رسانی و در حالی که در مساجد معتکف هستید بازنان آمیزش نکنید این مرزهای الهی است پس به آن نزدیک نشوید خداوند این چونین آیات خود را برای مردم روشن میسازد باشد که پرهیزگار شوند و لا و اموال بالباطل و بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون. را در بین خود به باطل نخوری و به عنوان رشفه قسمتی از ان را به حاکمان و قضات ندهید. تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید در حالی که شما میدانید این کار گناه است یسالونک عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل البيوت من ابوابها و الله لعلكم تفلحون در های ماه از تو سؤال می کنند بگو آنها بیان اوقات برای مردم و تعیین وقت حج است و نیکوکاری آن نیست که در حال احرام از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکوکار کسی است که تقوا پیشه کند و به خانه ها از درهایشان وارد شوید و از خدا بترسید تا رستگار شوید و فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند جنگ کنید و از حد تجاوز نکنید که خداوند تجاوزگران را دوست نمی دارد و قتلوهم حیث ثقفتموهم و من حيث اخرجوكم و الفتنة اشد من القتل و تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ و آنها را هر کجا یافتید بکشید و از آنجا که شما را بیرون کرده اند آنها را بیرون کنید و فتنه از کشتن بدتر است و با آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید تا اینکه با شما در آنجا بجنگند پس اگر در آنجا با شما جنگیدند ایشان را بکشید سزای کافران چنین است. فاین فا انتهوا فا ان الله غفور رحیم پس اگر دست برداشتند بیگمان خدابند خداوند آمرزنده مهربان است. وقاتلوهم حتى لا تكون و ويكون الدین لله فَإِنِ انتهوا فلا عدوان إِلَّا عَلَى و با آنها جنگ کنید تا فتن باقی نماند و دین از آن خدا گردد پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روانی است الشهر الحرام بالشهر الشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَا اَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا الله اللَّهَ مَعَ المتقين. ماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت دارای قصاص است پس هر کس تعدی و تجاوز کرد همان گونی که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و از خداوند بترسید و بدانید که خدا با پرهیز گاران است و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خیش به هلاکت نیافکنید و نیکی کنید که خداوند يكوكاران را دوست می‌دارد و اتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسرا من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضاً او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي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 و حج و عمر را برای خدا به اتمام برسانید و اگر باز داشته شدید به وسیله دشمن یا بیماری و غیره پس آنچه از قربانی فراهم شود و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به جایگاهش برسد و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت پس فدیه دهد از قبیل روز روزه یا صدقه خوراک دادن به شش مسکین یا قربانی کردن گوزفندی که میان فقرا تقسیم شود. پس هنگامی که در امان بودید، هرکس از عمر بهرهمند گردد، سپس اعمال حج را آغاز کند، آنچه از قربانی برای او میسر شد زپ میکند و هرکس کس نیافت سه روز در ایام حج، و هفت روز هنگامی که بازگشتید روزه بگیرید. این ده روز کامل است. این حکم برای کسی است، که خانواده او ساکن مسجد و حرام نباشد و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودو فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی حج در ماه های معلوم و معینی است پس کسی که در این ماه ها حج را خود فرض گرداند باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال نیست و آنچه از کارهای نیک انجام دهید خدا آن را میداند و توش برگیرید که بهترین توش پرهیزگاریست و ای خردمندان از من بپرهیزید لیس علیکم جناح ان فضلا من ربکم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 گناهی بر شما نیست که در ایام حج با خرید و فروش از فضل پروردگارتان روزی طلب کنید و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید و او را یاد کنید همچنان که شما را هدایت کرد و اگرچه چه پیش از آن از گمراهان بودید من <تصفيق> و ناس الله این الله غفور رحیم. پس از آنجا که مردم کوچ میکنند کوچ کنید و از خداوند آموزش بخواهید همانا خداوند آمورزندی مهربان است فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ پس چون مناسک حجی خود را به جای آورید خدا را یاد کنید همانند یاد کردن پدرانتان بلکه بیشتر از آن و از آنان کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار و من هم من یقول ربنا آتینا في الدنيا حسنة و في حسنة و عذاب النار و از آنان کسانی هستند که میگویند گویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی اتا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار اولئیک لهم نصیب مما كسبوا والله سریع الحساب اینانند که از آنچه به دست آورده اند بهری دارند و خداوند سریع الحساب است و الله حفیق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 و خدا را در روزهای معین و شمرده یاد کنید پس کسی که شتاب کند و در دو روز اعمال را انجام دهد گناهی نیست. و کسی که تأخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهد گناهی نیست. این رخصت برای کسی که تقبا پیشه کند و از خدا بترسید و بدانید که شما به سوی او محشور خواهید شد. و من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو الخصام. بعض مردم کسی هست که گفتارش درباره زندگی دنیا تو را به شگفت میاندازد. و خدا را بر آنچه در دل خود دارد قبایل میگیرد و حال آنکه او سر سخت دشمنان است. واذا تولى توالا سعافی الأرض ليُفسد فيها و يُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او هنگامی که روی برمیگرداند و میرود در راه فساد در زمین کوشش می کند و کشت و نسل را نابود می سازد و خداوند فساد را دوست نمی دارد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد و چون به او گفته شود از خدا به ترس خود بزرگ بینی او را به گناه می کشاند پس جهنم او را کافی است و چه بد آرامگاهی است و من الناس من نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد و از مردمان کسی هست که جان خود را برای به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و نسبت به بندگان مهربان است. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اي کسانی که ایمان آورده ای. همگی به اسلام درایید و گامهای شیطان را پیروی نکنید به درستی که او برای شما دشمن آشکار است فئن زللتُم من بعد ما جاءتکُم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم پس اگر بعد از آنکه که روشن و آشکار برای شما آمد لغزش کردید بدانید که خداوند توانمند و حکیم است هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة و قضية الأمر وإلى الله ترجع الأمور آیا جز این انتظار ندارند که خداوند در سایه هایی از ابرها به سوی آنان بیاید و نیز فرشتگان برای اجرای فرمان الهی بیایند و کار یک سر شود و کارها به سوی خدا برگردانده می شود از كَمْ آتَيْنَاهُمْ بپرس آيَةٍ بَيِّنَةٍ انداز نشانه های روشن به آشکار به داده و کسی که نعمت خدا را پس از آنکه برایش آمد دگرگون کند همانا خداوند سخت کیفر است زین للذین كفر الحياة الدنیا ويسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم يوم القیامه والله يرزق من یشاؤ بغیر حساب زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است و مؤمنان را مسخری می کنند و حال آنکه پرهیزگاران در روز قیامت بالاتر از آنان هستند و خداوند هر کس را که بخواهد بی شما روزی میدهد. كان الناس أمّة واحدة فبعث الله, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 در آغاز مردم یک امت بودند آنگاه خداوند پیامبران را مجد آور و دهنده برانگیخت و با آنان کتاب آسمانی را به حق نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کنند و تنها کسانی که کتاب به آنان داده شده بود پس از آنکه نشانهای روشن به آنها رسیده بود به خاطر ستم و حسادتی که در میانشان بود در آن اختلاف کردند پس خداوند به فرمان خیش کسانی را که ایمان آورده بودند به آن حق و حقیقتی که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد و خداوند هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند ام حسیبتم ان تدخل الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء و زلزلو يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله علا این نصر الله قریب. آیا گمان کردی که داخل بهشت می حال آنکه هنوز بر سر شما نیامده است مانند آنچه که بر سر پیشینیان شما آمد سختی و زیان به آنها رسید آنچنان تکان خوردند تا که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند یاری خدا کی خواهد بود آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم از تو میپرسند چه چیز انفاق كند بگو هر مالی که انفاق کردید پس برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است هر کاری نیکی که انجام دهید به درستی که خداوند به آن آگاه است کتب علیکم القتال وهو کره لكم و عسا ان تکراهو شیئا و هو خیر لکم و عسا ان تحبو شر لکم و يعلم و لا تعلمون جهاد در راه خدا بر شما واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آنکه آن برای شما بهتر باشد و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید حال آنکه آن برای شما بد باشد و خدا میداند و شما نمیدانید یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر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 از تو در باری جنگ کردن در ماه حرام میپرسند بگو جنگ در آن گناه بزرگی است و باز داشتن از راه خدا و کفر برزیدن به او و باز داشتن از مسجد الحرام و بیرون راندن اهلش از آن نزد خداوند بزرگتر و فتنه از کشتار بزرگتر است و پیوسته با شما میجنگند. تا آنکه اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد پس آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است و آنان اهل آتش دوزخند و همیشه در آن خواهند بود <سطور> إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم به درستی کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان به خدا امیدوارند و خداوند آموزنده‌ی مهربان است. یسألونک عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العتق كذلك يُبَيِّنُ الله لكم الْآيَاتِ لعلكم از تو در باری شراب و قمار میپرسند بگو در آن دو گناهی بزرگ است و سودهایی برای مردم در بردارد و گناه هر دو از سودشان بزرگتر است و از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند بگو مازاد نیازمندی خود این چون این خداوند آیات را برای شما روشن میسازد باشد که اندیشه کنید فی الدنیا والآخرة و يسألونك عنیتا ما قل اصلاح لهم خیر و انتو فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم این الله عزیز حکیم در دنیا و آخرت و از تو درباری یتیمان میپرسند بگو اصلاح کردن کار آنان بهتر است و اگر با آنان همزیستی کنید آنها برادران دینی شما هستند و وخداوند تبهکار را از درست کار میشناسد و اگر خدا میخواست شما را به زحمت میانداخت به راستی که خداوند توانمند و حکیم است ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنه خَيْرٌ من مشركه وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ و, آياته لعلهم يتذكرون. و با زنان مشک تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید و بیگمان کنیز با ایمان از زن آزاد مشک بهتر است اگر چه زیبایی دارایی او شما را به شگفت آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید تا ایمان بیاورند و قطعا برد با ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است اگر چه زیبایی یا دارایی و موقعیت او شما را به شگفت آورد آنان به سوی آتش دوزخت دعوت می کنند. و خدا به فرمان خیش به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند وآيات خود را برای مردم روشن میسازد باشد که متذکر شوند ويسألونك عن المحیط قل هو أمن فاعتزل النساء في المحیط ولا تقربوهن حتى يطهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَمَرَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ و از تو درباری حیز میپرسند بگو آن پلید و زیانبار است پس در حالت قائدگی از زنان کنارگیری کنید و با آنها نزدیکی نکنید تا پاک شوند پس هنگامی که پاک شدند و غسل کردند از همان جا که خداوند به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید به راستی که خداوند توبه کنندگان را دوست می‌دارد و نیز پاکان را دوست می‌دارد نساؤکم حرف لکم فأتو حرفكم اناشئتم وقدمو لأنفسكم واتقوا الله وعلمو أنكم ملاقوه و المؤمنين زنان شما کشتار شما هستند پس هر گونه که بخواهید کش زار خود درآوید و توش ای برای خود از پیش بفرستید و از خدا بترسید و بدانید که شما او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت ده ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سميع عليم و خدا را سوگند های خود قرار ندهید برای اینکه نیکی کنید و تقبا پیش سازید و در میان مردم آشتی دهید قسم یاد نکنید و خداوند شنوای داناست لا يؤاخذكم الله باللغو فی ایمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بیهوده و بدون قصد یاد میکنید مؤاخذ نمی ولی شما را به آنچه دلهایتان کسب کرده است مواخذه میکند و خداوند آمرزنده و بردبار است لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ برای کسانی که سوگند میخورند با زنان خود آمیزش نکنند چهار ماه انتظار است پس اگر بازگشتند همانا خداوند آمرزندی مهربان است و ان الطلاق فان الله علیم. و اگر تصمیم طلاق گرفتند به راستی که خداوند شنوای دانا است وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وابو أَحَقُّ احق فِي في ذلك ان اراد اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم بزنان مطلقه مدت سپاکی انتظار بکشند و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند برای آنها روانی است که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده کتمان کنند و شوهرانشان اگر خواهان آشتی هستند برای بازگرداندن آنها به زندگی زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترند و برای زنان حقوق شایسته ای است همانند حقوق و وظایفی که بر عهده آنهاست و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است الطلاق مره فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا إلا أي خافا أن لا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاللائی هم الظالمون طلاق دوباره است پس از آن یا باید همسر را به طور شایسته نگاه داشتن یا با کی رها کردن و برای شما روانی است که از آنچه به آنان داده اید چیزی پس بگیرید مگر آنکه زن و شوهر بترسند که نتوانند حدود الهی را برپا دارند پس ای مؤمنان اگر ترسیدید که حدود الهی را برپا ندارند گناهی بر آن نیست که زن فدیه به عوضی بپردازد و طلاق بگیرد اینها حدود الهی است پس از آنها تجاوز نکنید و هرکس از حدود خدا تجاوز کند پسینانند که ستم گرند و طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح ان يقيم حدود الله, حدود الله لقوم پس اگر شوهر برای بار سوم او را طلاق داد پس از آن زن برای او حلال نیست تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند و با او آمیزش جنسی نماید پس اگر شوهر بعدی او را طلاق داد گناهی بر آن که با ازدواج مجدد به یکدیگر بازگردند اگر آن دو پندارند دارند که حدود خدا را بر پا اینها حدود خداست که آنها را برای مردمی که میدانند بیان می‌نماید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 و نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم فهنگامی که زنان را تلاق دادید آنگاه به پایان روزهای عده خیش رسیدند پس به شایستگی آنها را نگه دارید و یا به و خوبی آنها را رها سازید و آنان را به خاطر زیان رساندن نگاه ندارید تا تعدی و تجاوز کنید و کسی که چنین کند قطعاً به خود ستم کرده است و آیات خدا را به مسخره نگیرید و نعمت خدا را بر خود و آنچرا که از کتاب قرآن و حکمت بر شما نازل کرده و شما را با آن پند میدهد به یاد بیاورید و از خدا بترسید و بدانید که خدا به همه چیز داناست و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعبلوهن این ینکحن ازواجهن اذا ترابو اذا ترادو بینهم بالمعروف ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله واليوم الاخر ذالکم ازکالکم لكم اطهر والله يعلم و لا تعلمون و هنگامی که زنان را طلاق دادید آنگاه ادده خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود باز ندارید وقتی که به طرز پسندیده در بین خیش ترازی کنند این دستوری است که از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارد به آن پند داده می شود و این دستور برای شما پر تر و پاکیزه است و خدا می داند.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 لا تضار ووالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَ فِصَالَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ و الله و أن ان الله بما تعملون بصیر و مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند این دستور برای کسی است که بخواهد دوران شیرخارگی را تکمیل کند و برای آن کس که فرزند برای او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک آنان را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد هیچ کس جز به اندازه تواناییش مکلف نمی شود نمادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش باید زیان ببیند و مانند همین احکام بر وارث نیز لازم است پس اگر آن دو دوبار زایت و مشورت یک دیگر بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند گناهی بر آنها نیست و اگر خواستید که برای فرزندان خود دایعی ای بگیرید گناهی بر شما نیست به شرط اینکه آنچه را که مقرر کرده اید به طور شایسته بپردازید و از خدا بترسید و بدانید که خدا به آنچه انجام می دهید بیناست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 والله بما تعملون نخوابی و کسانی از شما که می میرند و همسرانی باقی میگذارند باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند. پس هنگامی که مدت عدده خود را به پایان رساندند در آنچه آنان به طور شایسته در خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و خدا به آنچه میکنید آگاه است.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 و ان الله غفور حلیم و گناهی بر شما نیست در آنچه که به طور کنایه از خاصگاری زنانی که در اده بر زبان آورید یا در دلهای خود پنهان دارید خدا دانه است که شما به زودی به یاد آنان خواهید افتاد ولی پنهانی با آنها وعده زناشویی ندهید مگر اینکه سخنی پسندیده به طور کنایه بگویید و تصمیم به عقد ازدواج نگیرید تا مدت مقرر به سراید و بدانید که خداوند آنچه را که در دلهای شماست می داند پس از مخالفت او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده برد بردبار است لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَهُ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ اگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی نکرده اید و مهری برایشان معین نکرده اید طلاق دادید گناهی بر شما نیست و در این حالت آنها را بهره مند سازید بر توانگر به اندازی توانش و بر تنگ دست به اندازی توانش ای شایسته است و این حکم بر نیکوکاران الزامی است و این قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اگر زنان را پیش از ان که با آنان نزدیکی کنید تلاق دادید در حالی که برای آنها مهری تعیین کرده اید پس نصف آنچه را تعیین کرده اید به آنها بدهید مگر اینکه آنان حق خود را ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد و تمام مهر را بدهد و اگر ببخشید به پرهیزگاری نزدیک تر است. و بزرگواری و نیکی را در میان خود فراموش نکنید راستی خداوند به آنچه میکنید بیناست و علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوم لله قانتین. بر نمازها و بخصوص نماز میانه محافظت کنید و فروتنانه برای خدا به پاخیزید فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پس اگر از دشمن و غیر ترسیدید. در حال پیاده یا سواره نماز را به جای آورید پس هنگامی که ایمن شدید خدا را یاد کنید و نمازها را به تمام و کمال به جای آورید همان گونه که چیزهایی را که نمیدانستید به شما یاد داد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 و کسانی از شما که میمیرند و همسرانی به جامی گذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را با پرداختن هزینه زندگی بهرهمند سازند بدون آنکه از خانه شوهر بیرون کنند پس اگر بیرون روند درباره آنچه که آنان نسبت به خود به طور شایسته انجام میدهند از قبیل زینت دادن خود و ازدواج مجدد گناهی بر شما نیست و خداوند توان و حکیم است و للمطلقات متاعن بالمعروف حقا على المتقین و برای زنان طلاق داده شده هدیه ای مناسب و شایسته بر شوهر لازم است این است بر پرهیزگاران كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تعقلون این چون این خداوند آیات خود را برای شما روشن میسازد باشد که بیاندیشید. الَمْ <تصفيق> تر إِلَّا الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوَتُهُمْ ثم أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه های خود بیرون شدند در حالی که هزاران نفر بودند؟ پس خداوند به آنان گفت بمیرید، سپس آنها را زنده کرد، همانا خداوند بر مردم بخشش و فضل دارد ولی بیشتر مردم شکر به جانمی آورند وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوای داناست من است من ذالذی الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و, و ترجعون که به خدا قرض دهد قرض نیکو تا آن را برای او چندین برابر کند و خداونده است که روزی بندگان را تنگ و گشاده میسازد و به سوی او باز گردانده می شوید ألم تر ایل من بنی إسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم اذ قالوا لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلو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 آیا ندیدی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسا هنگامی که به پیام بر خود گفتند پادشاهی برای ما انتخاب کن تا در راه خدا جنگ کنیم. گفت شاید اگر جهاد بر شما مقرر شود در راه خدا جهاد نکنید. گفتند چرا در راه خدا جهاد نکنیم در حالی که از خانه ها و فرزندان من بیرون رانده شده ایم. پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد جز عدیه کمی از آنان همه سرپیچی و روی گردانی کردند و خداوند به ستمکاران آگاه است و لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملكا قالو اما يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم و پیام برایشان به آنها گفت همانا خداوند تالوت را به عنوان پادشاه برای شما به و انتخاب کرده است. گفتند چگونه او بر ما پادشاهی کند با اینکه ما به پادشاهی از او ترین و از مال دنیا بهره چندانی داده نشده است. گفت به راستی خداوند او را بر شما برگزیده است و او را در علم و نیروی بدن وسعت و برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد میدهد و خدا گشایشگر داناست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 ان فِي ذَلِكَ لكم این و پیام به آنها گفت همانا نشانی پادشاهی او این است کتابود عهد که در آن آرامشی از پروردگار شما و باقیمانده از آنچه آل موسا و آل هارون بر جای گذاشته اند قرار دارد در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند. به سوی شما خواهد آمد مسلما در این نشانهای برای شماست اگر مؤمن باشی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 والله معصابرین. پس هنگامی که تالوت با لشگریان رهسپار شد به آنها گفت همانا خداوند شما را به وسیله یک جوی آب آزمایش می کند پس هر کس از آن بنوشد از یاران من نیست و هر کس از آن نخورد قطعا او از یاران من است مگر کسی که با دست خیش کفی از آب برگیرد پس جز ادهی کمی همگی از آن آب نوشیدند و هنگامی که او و کسانی که با او ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند از کمی افراد خود ناراحت شدند و ادهی گفتند امروز ما توانایی مقابله با جالود و سپاهیانش را نداریم اما آنانی که به دیدار خدا یقین داشتند گفتند چه بسا گروه کوچکی که به فرمان خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند و خدا با آورد باران است و, لما برزول جلوت و قالو ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهنگامی که برای مبارزه با جالود و سپاهیانش به میدان آمدند گفتند پروردگارا بر دلهای ما صبر و شکیبایی فروریز وگامهای ما را استوار و ثابت بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان فهزموهم بی اذن الله و قتل داود جالوت و آتاه الله الملك والحكمة وعلمه یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین پس به فرمان خدا آنها را شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خداوند پادشاهی و نبوت را به او بخشید و از آنچه میخواست به او آموخت و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی خی دیگر دفع نمی‌کرد ان زمین تباه می گردید ولی خداوند بر جهانیان فضل و بخشش دارد ذیلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و لمن المرسلین اینها آیات خداست که ما آن را به حق بر تو خانیم و به تو از پیام بران هستی